زولفا شفته و خی کرده و خندان لب و مست پیرهنچاک و خان و سراحی در دست نرگسش اربد جوی و لبش افسوس کنند نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست سر فراغوش من آورد به آواز حزین گفته ای آشغ دیرینه من خوابت هست آشغی را که چونین باده شبیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست برو ای زاهد و بردورد کشان خورده مگیر که ندادن جزین تحفه به ما روز عله است آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهشت است وگر باده مهد خنده جام میو زلف گرهگیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکرد